پلیه ها را به سرعت بالا می روم، نفس نفس میزنم زنم روبروی تابلو اعلانات گروه می تا به بهانه دیدن بخشنامه ها و اطلاعی ها نفسی تازه کنم کلاس فلسفه قرون وستا به علت بیماری دکتر سیف تشکیل نمی شود کاغذ کلاسور به قیمت تعاونی در اختیار دانشجویان قرار می گیرد چاپ جدید کتاب کلیات فلسفه رسیده است و دانشجویان می توانند به کتاب فروشی دانشکده مراجعه کنند راه میافتم به جای رفتن به گروه و دیدن چهره عبوس خانم رجوی به انتهای کریدور میروم در کلاس دو۶ بسته است این نشانه خوبی است دانشجویان ترم اول هنوز شیطنتها و بینظمی های سالبالایی ها را پیدا نکردند در را باز می کنم. دانشجویان یک درمیان بلند میشوند. این نشانه بدی است. کیفم را روی میز پرت میکنم و نمایش همیشه را شروع میکنم. پشت به دانشجویان به حیات دانشکده نگاه میکنم. بسی رنج بردم در این سالسی. ذهنم بازیش را را پیشا پیشاپیش شروع کرده است. دختر و پسری کنار مجسمه فردوسی مشغول صحبت هستند. دختر کلاسرش را به سینه چسبانده گردنش را به طرف پسر کچ کرده و به دقت به حرفهای او گوش می میشنوم می شنوم می گیره. ردیف سوم دختران نفر وسط لحن صدا را به خاطر می سپارم می شنبم. اگه خیلی دیدنیه ما هم ببینیم لحن شوخ نفر سمت راست ردیف چهارم پسران نه اینها نشانه های خوبی نیستند از پنجره رو بر می گردنم. قدم میزنم و به رو به رو نگاه می گوشهایم دنبال صداها میگردند. میشنوم از جلو نظام؟ ردیف آخر نفر سمت چپ میشنوم آقا گرد همان صدا چند نفر آرام میخندند دختری بلند می شود تا از کلاس بیرون برود حتما طاقت نیاورده. دستش به دستگیره در نزدیک می شود که می گویم کجا خانم؟ می شنوم؟ ووی ردیف پنجم پسران نفر وسط. می شنوم؟ نهب بابا ردیف آخر پسران نفر سمت چپ دختر می گردد و سرگردان به دانشجویان و بعد به من نگاه می کند چشم در چشمش می دوزم رنگ چشمانش کم کم رو به تیرگی می رود. میگویم، شما و انگشتم را رو به سینه پسر جوانی نشانه میروم دست راستش را روی سینهش میگذارد، بلند میشود و میگوید مو، استاد نگاهش بیگناه میشود میگویم، جنوبی هستی؟ میگوید مو، استاد تیرانیم؟ همه میخندند دختر برمیگردد و سر جایش می نشیند میگویم آبادان. میگوید مو آبادان؟ نولک ما بچه ناف تیرونو چلوک می شود حالا باید دنباله نقش همیشگی را بازی کنم از سکو بالا میروم صندلی را عقب میکشم پشت میز می ایستم. خنده ها و پچپچ ها کم کم فروکش میکند بیا بیرون کلاس خاموش می شود لبخند بیجانی روی لب پسر نقش می بندد. فریاد می زنم. گفتم بیا بیرون بغل بلند می شود راه می دهد تا پسر بیرون بیاید پسر جوان بیرون می آید میشلد و میآید. آید بدنش به سمت چپ لنگر برمیدارد دارد دستش را به میزها میگیرد و خودش را به جلو کلاس میرساند رنگش پریده است این نشانه خوبی است میگویم اینجا کجاست؟ پسر سرگردان نگاهم میکند فریاد میزنم گفتم اینجا کجاست؟ پسر میگوید خوستاد ایجا دانشگاهه صدایش میلرزد این هم نشانه است میگویم پس ما نمایش روحوزی بازی نمیکنیم فریاد میزنم میکنیم؟ پسر میگوید خون نه میگویم پس حالا بشنوید و هرگز فراموش نکنید در کلاس من هیچ دانشجویی نباید بعد از من وارد کلاس بشه هیچ دانشجویی نباید قبل از من از کلاس خارج شه هیچ دانشجویی سر کلاس مزده نمیریزه متلک نمیپرونه خوشمزگی نمی کنه هیچ دانشجویی سر کلاس چرت نمیزنه کاریکاتور نمیکشه و روی میز رو خط خطی نمی کنه. هیچ دانشوی سر درس من بیش از دو جلسه غیبت نمیکنه و وگرنه سر امتحان نباید حاضر بشه هیچ دانشوی سر کلاس من جزوه نمی نویسه نکاتی رو یادداشت کنه اما تون نویسی ممنوعه فقط کسایی از درس من نمره میارن که همه ی کتاب های معرفی شده رو بخونن فعالانه در بحث های کلاس شرکت کنن و یک مقاله علمی در موضوع مرتبط با واحد درسی ارائه بدن هیچ حضور و قیاب رسمی در این کلاس صورت نمیگیره. هرکس نمی تونه هر شرایط گفته شده رو به پذیره میتونه در موقع و اضافه این درس رو حذف کنه. ساکت می شدم. پای چپم میلرزد. باز هم زیاده روی کردم. صندلی را پیش میکشم و می‌نشینم. پسر جوان سرش را پایین انداخته است. می‌گذارم سکوت در جان کلاس رسوب کند. این سکوت کار یک ساعت حرف را می کند سرانجام به پسر جوان می گویم بفرمایید بنشینید پسر جوان مسیر آمده را سنگین و کند بر می گردد می گویم، خب کلاس را شروع می کنم اول با هم آشنا میشیم و شما به من می گید چرا فلسفه را انتخاب کردید البته من هم به شما میگم چرا فلسفه خوندم از آقایون شروع میکنیم از ردیف آخر، بفرمایید دانشوی جوانی بلند می شود من محمد ایوبی هستم، خانوم همین حالا بگیم چرا رشته فلسفه را انتخاب کردیم؟ میگویم خانوم نه، استاد، بله همین حالا بگیم برای ما انتخاب کردن ما خودمون انتخاب نکردیم یعنی یه مؤسسه ای تو شهرمون بود که کارنامه بچه‌ها رو می‌گرفت و براشون رشته انتخاب می‌کرد. برای ما هم با توجه به وضعیت کارنامه‌مون فلسفه انتخاب کردن. همین استاد. این شروع خوبی نیست. حالا همه میگویند پدر و مادرشان یا دایی و عموشان یا معلم و مربیشان یا مؤسسه شهر و دیارشان برایشان رشته فلسفه را انتخاب کرده. حدسم درست است. تا ردیف جلو پسران کسی نکته تازه‌ای نمی‌گوید یک نفر مانده به آخر جوانی بلند می‌شود و سرش را بلند نمی‌کند به جلد کتاب جلوش خیره شده است به کتاب نگاه می‌کنم دنیای صوفی این نشانه خوبی است سکوت طولانیش را با گفتن بفرمایید می‌شکنم پسر تهریش خرمایی رنگی دارد دلم می‌خواهد رنگی چشمایش را ببینم ولی از همین حالا او را شبیه هنر پیشه نقش فرانچسکوی قدیس میبینم. میگوید روحامی هستم. کلمه روحامی کش می آید. در کلاس تنین می و در کاسه سرم منفجر می شود. در خلاه زمان بیست ساله سرگردان می و به تصویر ثابتی می رزم. مردی چهل ساله کودک سماهی را در آغوش گرفته و دستش را آرام آرام به پشت کودک می‌زند. من به دلایل گوناگونی رشته ای فلسفه را انتخاب کردم. به همان سرعت که به گذشته پرتاب شدم، به زمان حال برمیگردم. ذهنم تکرار می‌کند. اسمش اسمش هنیف هنیف هنیف حنیف. فلسفه را انتخاب کردم تا چیستی و چرایی هستی را بدانم. هنیف هنیف هنیف هنیف هنیف تا جواب سوالهایم را پیدا کنم تا بتوانم خوب زندگی کنم هنیف. هنیف هنیف هنیف هنیف هنیف فلسفه را انتخاب کردم تا خودم خدا و جهان را بشناسم. نه، نه نه نه، این هنیف نیست نه، نه، نه، نه، نه نه فلسفه را از کودکی دوست داشتم احساس میکنم علاقه به فلسفه در خونم جاری و ساری است نه، نه، نه، نه، نه، نه, نه. اما علاقه جدی به فلسفه را پس از مرگ مادرم پیدا کردم وقتی نتوانستم بدانم و بفهمم مرگ چیست؟ چگونه تعریف می شود؟ و چرا وجود دارد؟ مرگ چه چیز خوبی است؟ لاقل در این لحظه برای من کارگوش است چه خوب شد مادرت مرد پسر جان وگرنه من الان قبض روح می شدم. به خودم میایم. پسر جوان به جایی در دور دست خیره شده است. حتما تصویر مادر مرحومش رو در آسمان هفتم میبیند. میگویم، متأسفم متاسفم. سر تکان می و برای اولین بار چشمهایش را می بینم. تکان میخورم. چه چشمهایی آشنایی. فرانچسکوی قدیس. نه نه. کی کجا؟ من ریاضی خوندم، یعنی دیپلم ریاضی دارم، ولی فلسفه را انتخاب کردم تا زنده بمونم یعنی فلسفه اینقدر برای شما مهمه؟ از لحن خودم جا میخورم لحن آمیانم در فضای تراژیکی که روحامی قدیس به وجود آورده حکم یک قهقهه بلند را در مجلس سوگواری یک جوان دارد خودم را جمع جور می کنم آقای روحامی امیدوارم سرخوردتون نکنم ولی این توقع زیادی نیست چیزی نمی گوید و ذهن من فرصت پیدا می کند تا تکرار کند اسمش اسمش اسمش می گویم آقای روحامی چیه روحامی ساله. ساله روحامی نفس راحتی میگشم فراموش میکنم چی میخواستم از او بپرزم